اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا مك اشراف و بزرگان از قوم او كسر کشی کردند گفتند عش عبر قطع انتو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خیش بیرون خواهیم کرد یا این که به آین ما بازگردید شعیب گفت آیا بازگردیم اگرچه از آن کراحت داشته باشیم؟ قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ربنا وسع ربنا كل شئی علما على الله توكلنا ربنا افتح بیننا و قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اگر ما به آین شما باز گردیم بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات داد به تحقیق بر خدا دروغ بست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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا إنكم اذن لخاسرون و اشراف و بزرگان از قوم او که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید قطعا شما زیانکار خواهید بود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمن آنگاه زلزلهٔ شدیدی آنها را فرا گرفت پس در خانههای خود از پا درآمدند الذین كذبوا شعیبا كنلم غنو فها الَّذِينَ كَذَّبُوشُ عَيْبًا كَانُوهُمُ آنان که شعیب را تقزیب کردند چنان نابود شدند که گویا هرگز در آن دیار و خانه ها نبودند و آنان که شعیب را تقزیب کردند خود زیانکار بودند فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ از آنان روی گرداند و گفت ای قوم من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 و ما در هیچ شهر و دیاری پیام نفرستادیم مگر اینکه اهلش را به رنجها و سختی ها گرفتار ساختیم شاید تزرع وزاری کنند ثم بدلنا مکان السیئت الحسنت حتی عفو وقالو؟ وقالوا قد مس اساءنا الضر واسراء فخذناهم بغته وهم لا يشعرون به جای ناخوشی و بدی خوشی و نیکی آوردیم تا این که ابزون شدند و گفتند بیگمان به ما نیز رنج و راحتی رسیده بود پس ناگهان آنها را در حالی که بیخبر و غافل بودند گرفتیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كذبوا, ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می و تقوی پیش می کردند قطعا درهای برکات از آسمان و زمین را بر می گشودیم ولیکن آنها آیات و پیام ما را تکذیب کردند پس ما نیز آنها را به کیفر آنچه انجام میدادند فرو گرفتیم اافامین اهل غآائیتتی هم ب سونه بیت اون وهم نهائمون آیا اهل این شهرها و آباددی ها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در شب هنگامی که خفته باشن سراغشان بیاید؟ او امین اهل القآ عتی هم بس سون بحون وهم میلعبون آیا اهل این شهرها و آباددی ها ایمن هستند از اینکه عذااب ما در روز هنگامی که سرگرم بازی هستند به سراغشان بیاید؟ الله فلا الله إلا آیا آنها از مکر و گرفت خدا در امانند؟ در حالی که جزیان جز کاران کسی از مکر و گرفت خدا ایمن نمی شود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 وَلا قدَ جَأَتهُم رصُلُهُم بالِبَيناتِ فَمَا كانَ يُؤمنِنوا بِمَا كَذَّبُ مِن قَ كذَلكَ يَقُبَعُ الله على قُل بِكَافِرين إنها شهرها و آباددیهاییس که برخی از اخبار آن را بر تو حکت میکن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 و ما وجدنا لأکثرهم من عهد و وجدنا اکثرهم لفاسقیم و در بیشترشان وفای به عهد نیافتیم و به راستی بیشتر آنها را نافرمان یافتیم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 سپس بعد آنها موسا را با آیات و نشانه های خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم آنگاه آنها به آن آیات ستم کردند و کافر شدند پس بینگر عاقبت مفسدان چگونه بود؟ و قال موسا یا فرعون رسول من رب العالمين و موسا گفت ای فرآن من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هستم حقیق علی الا اقول علی الله اللی... قد جئتكم بی من ربكم فأرسل معی بني سزاوار است که جز سخن حق بر خداوند نگویم به تحقیق من دلیل و معجز ای روشن از پروردگارتان برای شما آورده ام پس بنی اسرائیل را با من بفرست قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون گفت اگر معجزه‌ای آوردی آن را بیاور اگر از راست گویانی فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين پس موسی عصای خود را انداخت، ناگهان آن اجدههای آشکار شد و ننظرایدم او فدههبانیم نظیرری و دست خود را از گریبان بیرون آورد پس ناگهان آن سفید و درخشان برای بینندگان بود. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند براستی این شخص جادوگری ماهر و داناست يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه فرمان میدهید؟ دهید؟ قالو و, و المدائن حاشرین. آنگاه به فرعون گفتند او و برادرش را بازداش کن و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست يأتوك بكل ساحر عليم تا همه ساحران دانا و ماهر را به نزد تو بیاورند و جاء السحره فرعون قالوا ان لنا لا اجرا قالوا ان لنا لا اجرا ان كن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 قالوا يا موسى انما انت تلقي وانما ان نحن الملقيين روز موعد فرار سی ساهران گفتند ای موسی یا نخود تو عصای خود را بیافکن یا ما ابزار خود را بیافکنید قال ألقوا فلما ألقوا حروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم موسى گفت شما بی افکنید چون ابزار خود را افکندند چشمهای مردم را افسون کردند و آنها را ترساندند و سهر عظیمی پدید آوردند و اوحینا الى موسا ان القعصاک فا هي هی تلقف ما يفكون و ما به موسا وحی کردیم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 فغلبو هنالک و انقلبو صاغرین پس آنجا فرعون و فرعونیان همه مغلوب شدند و خار و زبون باز گشتند و القی السحرات ساجدین. و ساهران به سجد افتادند قَالُوا آمَنَّا برب الْعَالَمِينَ گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم رب موسى و هارون پروردگار موسى و هارون قال فرعون آمنت. به قبل ان اذن لكم ان هذا ماكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فرعون گفت آيا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آورید قطعا این دسی سوی نیرنگیست که در شهر اندیشیده تا اهلش را از آن بیرون کنید پس به زودی خواهید دانست لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ البته دستهایتان و پاهایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید سپس همگی شما را بردار خواهم زد قالو انا ربنا منقلبون. گفتند پس از شهادت ما به سوی پروردگار من باز می گردیم.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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون و اشراف و بزرگان از قوم فرعون به او گفتند: «آیا موسا و قوم اشرارها میکنی تا در زمین فساد کنند و تو و معبودانت را واگذارند؟ گذارند؟ فرعون گفت: به زودی پسرانشان را میکشیم و زنانشان را زنده نگه میداریم و بیگمان ما بر آنها چیره و مسلط هستیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسی به قومش گفت از خدا یاری بجوید و سبر و استقامت پیش کنید همانا زمین از آن خداست به هرکس از بندگانش که بخواهد آن را به می میدهد و میبخشد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است قالو اوهینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا حالا عصر ربک اییکدو وک وایست تخلیفکن ف ربی فیارا كيف عملو قوم موسا گفتند پیش از آنکه به سوی ما بیایی آزار دی و بعد از آن نزد ما آمدی نیز آزار میبییم موسی گفت امید است پرورد دشمن شما را حلا کند و شما را در زمین جانشین سازد پس بینگرد چگونه عمل میکنید ولقد و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون و به راستی ما قوم و نزدیکان فرعون را به قد سالی و کمبود ها گرفتار کردیم شاید که آنان پند گیرند فاذا فا جاءتهم لنا هذه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 فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمملا والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين پس عذاب و بلاهای آشکار از قبیله طوفان و ملخ شپش و قورباغه ها و خون را که هر کدا معجزه و نشانه هایی روشن و جدا جدا بود بر آنها فرستادیم باز سرکشی کردند و گروهی گناهکار بودند و لما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسى ادع لنا ربک بما عهد عندك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 پس هنگامی که عذاب را تا مدت معینی که آنان به آن می از آنها برطرف کردیم ناگهان پیمان شکنی کردند فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بی كذبوا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 مرنا ما كان يصنع فرعون و و, ما كانوا يعرشون. و شرق و غرب زمین را که در آن برکت داده بودیم به گروهی که ناتوان شمرده می به میراست دادیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که کردند تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم او ساختند و آنچه را که بر میافراشتند در هم کوبیدیم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 قال انکم قوم تجهلون و ما بنی را از دریا گذراندیم آنگاه بر گروهی گذشتند که اطراف بطهای خود با تواضع و فروتنی گرد آمده بودند گفتند ای موسا برای ما نیز معبودی قرارده همانگونه که آنها معبودهایی دارند موسا گفت: حقا شما گروهی نادان و جاهل هستید. این ها متبرم ما هم و ما بی گمان اینها هم ماهم فيه وباطل ما بیگمان اینها عاقبت کارشان نابودی است و آنچه انجام میدادند نیز باطل است.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 جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم و ذلكم من ربكم عظيم. و به یاد آورید زمانی را که شما را از فرعون و فرعونیان نجات دادیم آنها پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می دادند. پسرانتان را می و زنانتان را زنده نگه می داشتند.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 و قال موسى لأخیه هارون خلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین و با موسى سی شب بعد نهادیم و آن را با ده شب دیگر کامل کردیم پس میعاد پروردگارش با او چهل شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفت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 قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَ اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَهِنگامی که موسا به آمد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 پس هنگامی که به هوش آمد ارز کرد تو پاک و منزهی من به سوی تو بازگشتم و توبه کردم و من نخستین مؤمنانم <تصفح> قال یا موسیٰین مصطفیتو که علم ناس بی رسالاتی و بی کلامی فخذ ما که من الشاکرین. خداوند فرمود ای موسا من تو را با پیامهایم و با سخن خود بر مردم برتری دادم و برگزیدم پس آنچه را به تو داده بگیر و از سپاس گزارن باش و کتبنا لهو فی الالواح من كل شیئ موعظتا و تفصیلا لکل شیئ فخذها بقوة و امر قوم که یأخذوا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 سأصرف عن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلک بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين به زودی کسانی را که به ناحق در روی زمین تکبر می‌ورزند از آیات خود باز می‌دارم و اگر هر نشان ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نمی‌گیرند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 و قوم موسا بعد از رفتن او به میادگاه از زیبرهایشان گوثاله ای ساختند جسد بیجانی که صدای گوساله داشت آیا نمیدیدند که با آنها سخن نمی و و براهی هدایتشان نمی آن را به خدایی گرفتند و ستمکار بودند و لم... ما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويوفق لنا لنكونا من پشیمان شدند و دیدند که به راستی گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار من به ما رحم نکند و ما را نیامرزد زد، از یانکاران خواهیم بود. و لما رجع موسى إلى قومه غبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جرّه إليه. قال بن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي و چون موسا خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت گفت پس از من چه بد جان برایم بودید آیا از حکم پروردگارتان پیشی گرفتید و لوحا را انداخت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 قال ر اغفر فلي ولی وادخلنا وادخل ناف رحمیک أنت ارحم انتحماحی موسا گفت: پروردگارا من به برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خویش داخل کن و تو مهربان ترین مهربانان هستی این. این اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم و ذلت فی الحیات الدنیا و کذالک نجزی به راستی کسانی که گوسال را به خدایی گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلت و خاری در زندگی دنیا به آنها میرسد و این چنین دروغ پردازان را کیفر میدهیم و الذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم و کسانی که مرتکب کارهای بد شدند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 وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنْيَاي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 انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین و موسی از قومش هفتاد مرد را برای میعاد ما برگزید پس هنگامی که زلزله آنها را فرا گرفت و همه مردند موسی گفت پروردگارا اگر میخواستی پیش از این آنها و مرا هلاک میکردی آیا ما را به آنچه نادانان انجام داده اند می‌کنی؟ این جز آزمایش تو چیزی نیست هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه میسازی و هر که را بخواهی هدایت میکنی تو یاور و کار مایی پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی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 فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ هم بِي آیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ و برای ما در این دنیا و در سرای آخرت نیکی مقرر فرما ما به سوی تو خداوند فرمود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 تورات و الإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهام عن المنكر و يحل لهم الطيبات ویحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عليهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي زلمعه که هم المفلحون از این رسول خدا پیام بر امی پیروی می کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته می آبند آنها را به کارهای خوب و پسندید فرمان می دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان می دارد.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 وكلماته بگو ای مردم من فرستادی خدا به سوی همه شما هستم آن خدایی که فرمان رواه آسمان‌ها و زمین از آن اوست معبود راستینی جز او نیست زنده می‌کند و می‌میراند پس به خدا و اش آن پیام بر امّی که به خدا و کلماتش ایمان دارد ایمان بیاورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت شوید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 وَقَطَّعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 و انفوسهم یظلمون و انها را به دوازده قبیله گروه گروه تقسیم کردیم و به موسا آنگاه که قومش از او آب خواستند به کردیم که اصایت را بر سنگ بزن ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون جزد هر گروهی آبش خور خود را دانست. و عبر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرو فرستادیم و به آنان گفتیم از آنچه از پاکیزه ها روزیتان کردیم بخورید آنها با نافرمانیشان بر ما ستم نکردند بلکه بر خیشتان ستم می نمودند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 و از آنها در باری اهل قریه ای که نزدیک دریای سرخ بود بپرس هنگامی که آنها در روز شنبه تجاوز میکردند چون ماهیان آنها در روز شنبهشان که روز تعطیل و عبادت بود روی آب آشکار میشدند. و روزی که تعظیمشم به نمیکردند به سراغ آنها نمی آمدند، این چون این آنها را به کیفر آنچه نافرمانی می کردند آزمایش کردیم.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 ان جئنا الذين ينهون عن السوء ان جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا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 به بکیفر آنکه نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیم عما عن عنه قلنا لهم پس چون از ترک آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند به آنها گفتیم به صورت های خار و مترود درایید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 وانها را و بدی ها آزمودیم شاید توبه کرده به راه راست باز کردند فخلف من بعدهم خلف وریث الكتاب یأخذون عرض هذا و یقولون سیغفر لنا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 و الدار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. پس از آنها گروهی غیر صالح جانشین آنها شدند که کتاب تورات را به ارث بردند متاع این دنیای پست را میگیرند و میگویند به زودی آمرزیده خواهیم شد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 وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وظنوا, وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا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 آنچه که در آن است یاد کنید تا پرهیزگار شوید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم و على أنفسهم ألسَت بربكم قالوا بلا شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. و بیادا هنگامی که پروردگارت از پشت های فرزندان آدم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 او تقول انما أَشْرَكَ اباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم اف بما فعل المبطلون يا مباد بگوید از پیش شرک آورده بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام دادند نابود میکنی؟ و, و این چون این آیات را به تفصیل بیان میکنیم و شاید به سوی حق باز بازگردند واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فاي پیامبر بر آنها به سرگذشته کسی را که آیات خود را به او دادیم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 و اگر الكلب إن تحمل عليه او با آن بالا ميبردين ولی او به سوی زمین و دنیا مایل شد و به پستی گرایید و از هوای خیش پیروی کرد. پس مسئله او چون مسئله سگه هار است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون می و اگر او را به حال خود واگذاری باز هم زبانش را از دهان بیرون می آبرد. این مسئله گروهی است که آیات ما را تقضیب کردند. پس این داستانها را بر آنها بازگو کن شاید بیندیشند القوم كذبوا بی و انفسهم كانوا يظلمون. چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تكذیب کردند و آنها بر خویشتن ستم میکردند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 اولئیک کل بل هم اضل اولئیک هم الغافلون به تحقیق گروه بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم آنها دلهایی دارند که با آن نمیفهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند با هایی دارند که با آن نمیشنوند آنان مانند چهار پایانند بلکه اینان گمراهترند اینان همان غافلانند وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماءه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 من خلقنا يهدون بالحق و و از میان آنان که آفرید ایم، گروهی هستند که به حق هدایت می نمایند و به آن حکم و عدالت می کنند وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا سنستدرجهم من نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يعلمون. و کسانی که آیات ما را تقزیب کردند به تدریج از جایی که نمیدانند گرفتارشان خواهیم کرد وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ و به آنها مهلت میدهم بیگمان تدبیر من متین است اولم ما من جنه هو نذیر مبین. آیا فکر نکرده اند که همنشین آنها هیچ گونه نشانی از دیبانگی ندارد و تنها بیم دهنده آشکار است اولم ينظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى وان عسى يكون قد اقترب اجلهم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 من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طویانهم يعمهون. هر کس را که خدا گمراه کند پس هدایت کنند ای برایش نیست و آنها را در سرکشی و تغیانشان سرگردان رها می کند يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها یسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ای پیامبر در باری قیامت از تو سوال میکنند کی باقی میشود بگو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 من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهندهای برای گروهی که ایمان دارند هو الذی خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به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 ما آتاهما صالحا جعل له في ما آتاهما فتعال الله ما پس چون فرزندی تندرست و فتعالى الله عما داد خداوند برای او در آنچه به آنان داده بود شریکانی قرار دادند. پس خداوند برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. آیا چیزی را شریک میگیرند که چیزی را نمیآفریند و خودشان مخلوقند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون و نمی توانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء ادعوتموهم ام صامتون و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی می کنند برای شما یکسان است خواه آنها را دعوت کنید و یا خاموش باشید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 ای پیامبر به مشرکین بگو شریکانتان را بخانید سپس بر ضد من تدبیر و نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید این ولین الله الذی نزل الكتاب،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 و این تدوم إلى الهدى لا اسمون ووتراهم میومورون ایی اینکه وهم لا و و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید سخنانتان را نمیشننوند و آنان را میبینی که به تو نگاه می در حالی که نمی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ای پیامبر گذشت را پیش کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان و انما ناک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم و اگر از سوی شیطان وسوسه ای بترسد به خدا پناه به بر او شنوای داناست الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون همانها کسانی که پرهیزگاری میکنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد به یاد خدا میافتند حسناً گهان بینا میگردند و اخوانهم یمدونهم فی الغی، ثم لا يقصرون و برادرانشان از شیطان آنان را به گمراهی میکشانند سپس در این زمین کوتاهی نمی‌کنند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 بصائر من ربكم و, لقوم و چون آیه و معجزه ای برای آنان نیاوری گویند چرا خودت آنان را برنگزیدی؟ بگو من فقط از چیزی پیروی می کنم که از پروردگارم به من وحی می شود این قرآن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 تامش و ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين و پروردگارت را در دل خود با تضرع و بیم نواصدهای بلند در صبحگاهان. گاهان و شام گاهان یاد کن و از غافلان مباش. این‌الذین عدا ربک لا يستكبرون عن عبادتیه و يسبحون و يسبحنه و له که در نزد پروردگار تو هستند. از عبادتش تکبر نمی و او را به پاکی یاد می کنند و برایش سجده می کنند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 و الله ورسوله رسوله کنتم مؤمنین از تو درباری انفال سؤال میکنند بگو انفال از آن خدا و پیام برست پس از خدا بترسید و میانی خودتان را اصلاح کنید و خدا و پیام برش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذكر اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا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 الذين يقيمون الصلاه ومن مما رزقناهم ينفقون کسانی که نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی دادیم انفاق می‌کنند اولئک هم المؤمنون حقا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 یجادلون که فی الحق بعد ما تبین که انما یساقون الى الموت ینظرون آنها پس از آنکه حقیقت آشکار شد در باری حق با تو مجادله می کنند گویی به سوی مرگ رانده میشوند به و خود می نگرند.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 لیو حق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تا حق را ثابت و باطل را از میان بردارد اگر چگونه کاران ناخشنود باشند از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بی من الملائکت مردفین به یاد آورید هنگامی که از پروردگارتان یاری میخواستید. پس او خواسته شما را پذیرفت و فرمود من شما را با یک هزار از فرشتگان که پیاپی پی فرود می آیند یاری می کنم وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله الله حکیم. و خداوند این یاری و مدد را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست به راستی خداوند پیروزمند و حکیم است. اَذْ يُغَشِّيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 وگام های تن را با آن استوار کند. اذیو ربک ایل الملاکت معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الاعماق واضربوا منهم كل بنان و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و حراس میفکنم پس بر فراز گردنها بزنید و همه انگشتانشان را بزنید ذالک بِأَنَّهُمْ انهم الله و و الله فإن الله این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس خداوند سخت کیفر است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 اطیع الله ورسوله و لا تولوا عنه وانتم تسمعون ای کسانی که ایمان آوردید خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را میشنوید وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ و مانند کسانی نباشید که گفتند شنیدیم حال آنکه آنان نمی شنیدند اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ صُمُّ لا همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد كر و لالی هستند كه نمیأندیشند ولو علم الله فيهم خيرا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا میخواند که شما را حیات و زندگی میبخشد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 و ان الله شدید العقاب و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد، رسد بلکه همه را فرا می گیرد و بدانید که خداوند سخت کیفر است واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أي يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم و من الطیبات لعلكم تشکرون و به یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید میترسیدید ترسیدید که مردم شما را بربایند پس خداوند شما را پناه داد و با یاری خود شما را تایید و تقویت کرد و از چیزهای پاکیز به شما روزی بخشید شاید شما سپاسگذار باشید یا أیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ای کسانیکه ایمان آوردهاید به خدا و پیانبر او خیانت نکنید. و نیز در امانت های خود در حالی که می دانید خیانت نورزید وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 و شما را میامرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است وإذ این میمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و, كأو كأو و, و الله والله خیر الماکرین و به یاد آور آنگاه که کافران در باری تو نقشه میکشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا تو را بکشند و یا از مکه بیرونت کنند آنها چاره و مکر میاندیشیدند و خدا هم تدبیر میکرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است و اذا عَلَيْهِمْ عليهم قالوا قد سمعنا لو نشاؤ لقلنا مثل هذان هذان الا سطير و چون آيات ما برانها خاندش ود همانا شنیدیم اگر ما هم بخواهیم مانند آن را میگوییم اینها جز افسانه های پیشین یا نیست قا اذ قالوا اللهم ما ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا و به یادآور انگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست پس از آسمان سنگی بر ما به باران یا عذاب دردناکی بر ما بفرست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 وتولي و سرپرست آن تنها پرهیزگارانند ولی بیشترشان نمیدانند او اما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديا العذاب بما كنتم تكفرون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 قد سلف و فقد ای پیامبر به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست بردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود باز گردند پس بی‌گمان سنت و روش خداوند در باری پیشینیان گذشته است. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله فإن تَهَو فإن الله بما يعملون بصير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 نعم و نعم و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست چنیکو سرپرست و چنیکو یاوریست